برنامی از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند مهرافرین شاعر پیوسته با قصه و افسانه سر و کار داره و اون رو کلید گنجینه راز و رمزهای کهن میدونه افسانه ها و قصه ها برای این خلق شدن اونها رو بخونیم بشنویم به خاطر و از اونها حکمت و اندرز و عبرت بیاموزیم اما امشب یک افسانه ایرانی براتون نقل می به نام افسانه شانه به سر بر گرفته کتاب افسانه های مردم ایران بن و گردآوری جمیله فرهانی و کتاب های نامادری به گردآوری و بازمیسی محمد رضا شمس یکی بود یکی نبود روزی روزگاری در زمانهای بسیار قدیم شاید زمانی که من و شما نبودین خیلی دورها، دختر کوچیک و مهربونی زندگی میکرد مادر نداشت اما همما زن بابای بدجنسی داشت که دخترک ما رو خیلی عذیت میکرد دخترک از صبح تا شب کار میکرد اونم چه کارایی کارایی سخت خیلی سخت اون با اینکه سن زیادی نداشت اما تمام خونه و حیات بزرگشون رو جارو و آپاشی میکرد از چشم آب می‌آورد. شیر گاوها رو میدوشید گوسفندها رو به چرا میبرد حتی غذا میپخت خلاصه هزار تا کار سخت انجام میداد با این همه زنبابای بدجنس از دست اون گله و شکایت داشت و میگفت این دختره تنبله تنپروره ارزه هیچ کاری رو نداره اه دخترک نه دوستی داشت و نه همباسی روزی از روزها وقتی دخترک به سر چشم رفت تا آب بیاره یه دفعه چشمش به یه شونه زرد طلایی افتاد که مثل طلا می درخشید دخترک با دیدن شونه خوشحال شد و گفت خدای من چه شونه قشنگی و چون دوستی نداشت و دلش هم از دست برجنسی های زنبابا پر بود شروع کرد برای شونه درد دل کردن اونقدر گفت و گفت که پاک یادش رفت برای چی اومده سر چشمه یه دفعه صدای زن بابا بلند شد ای دختره تنبل کدوم گری رفتی ها از صبح تا الان چیکار میکنی؟ یه آب آوردن که اینقدر سخت نیست بی که تنبل این همه معطلی برای چیه ها دخترک با شنیدن صدای زن بابا رنگ از صورتش پرید با عدله شونه زرد طلایی رو پنهون کرد کوزه ها رو پر از آب کرد و آروم به دنبال زنبابا که همچنان زیر لب قرولون میکرد کرد فردای اون روز زن بابای جنس حوث گل سرخ کرد و به دخترک گفت زود باش، زود باش برو سهرا، یه دست گل سرخ بچین و بیار، میخوام گلغن درست کنم دخترک گفت آخه، آخه توی این چلی زمستون گل سرخ پیدا نمیشه زن بابا با عصبانگت فریاد زد یعنی تو از من بهتر میفهمی زود باش زود باش و گروه تو رو از خونه بیرون میکنم زود باش دختره که افسانی ما مجبور شد در اون هوای سرد به صحرا بره رفت و رفت و رفت تا کنار تپی چهار مرد رو دید که آتیش روشن کردن و دور اون حلقه زدن دخترک تا اونها رو دید با خوشحالی به طرفشون دوید یکی از اونا که پیرمرد مهربونی بود به دخترک گفت دختر جان توی این برف و بوران اومدی چیکار کنی ها؟ دخترک به اون گفت که برای چیدنه دستی گره سرخ اومده اگه نتونه گره سرخی پیده کنه زن بابای بدجنسش اون از خونه بیرون میکنه. پیرمرد که فصل زمستون بود گفت برادرم بهار این دختر رو ناامید نکن باید به با اون کمک کنی بهار چرخی دور خودش زد برفها آب شد درختها ها جوونه زدن از جوونه ها قنچه در اومد قنچه ها بشدن. دخترک هم با خوشحالی گلهای سرخ رو چید و از بهار تشکر کرد و به طرف خونه براه افتاد دخترک افسانی ما با خوشحالی به خونه رسید زن بابا با دیدن اون و دست گل سرخی که آورده بود سخت تعجب کرد و با خودش گفت این دختره چجوری تونسته توی این چله زمستون گل سرخ پیدا کنه و بعد شروع کرد به داد و بیداد راه انداختن که چرا قدیه کردی ها؟ تو کی میخوای دست از این تنبلی و بازی برداری دخترک بیچاره حرفی نداشت که بزنه و آروم شروع کرد به گریه کردن زن بابا با دیدن اشکهای دخترک عصبانیتر شد و گفت حالا دیگه برای من آبغوره میگیری یعنی اینکه دارم بهت زور میگم عذیتت میکنم ها؟ زود باش زود باش برو بخواب چون صبح زود باید بری و یه سبت سیب سرخ بیاری و اگه نیاری بهتره به خونه بر نگردی دخترک بدون اینکه چیزی بخوره رفت و گوشهی گرفت و خوابید فردای اون روز صبح زود زن بابای بدجنس اومد بالای سرش رو فریاد زد پاشو، پاشو، دختره خوابالود من یه سبد سیب سرخ میخوام زود باش، زود باش. دخترک با چشمای پر از خواب دوباره توی برف و بوران رفت و رفت تا کنار همون تپه رسید. پیرمردی که اسمش بهار بود با دیدن دخترک با مهربونی گفت: دختر جان، باز که اومدی. این دفعه دیگه چی میخواد؟ دخترک با گریه گفت زنبابا یه سبت به سرق میخواد اگه نتونم براش ببرم از خونه بیرونم میکنه حالا چیکار کنم پیرمرد که بهار بود رو به تابستان کرد و گفت برادرم تابستان حالا نوبت توی که دل این دخترک بیچاره رو شاد کنی تابستان گفت حتما این کارو میکنم چون این دختره خیلی مهربونه تابستان از جاش بلند شد چرخی زد هوا گرم شد برفها آب شد درختها شکوفه کردند شکوفه ها ریخت و درخت های سیب پر از سیب های سرخ و درست شدند دخترک با خوشحالی سبدی پر از سیب کرد و از چهار مرد تشکر و خداحافظی کرد و به طرف خونه برافت دخترک افثانه ما با سبدی پر از سیب سرخ به خونه رسید زن بابا با دیدن سیبهای سرخ با تعجب فریاد زد وای وای وای, وای چه سیبای سرخ دراشتی و بعد لگدی به دخترک زد و گفت دخترک دست پا چلفتی چرا بیشتر نیوردی ها؟ دلت نیمد؟ البته از تو بعید نیست که اینقدر کنس و بخیل باشی دخترک چیزی نگفت و آروم رفت گوشهی گرفت نشست زن بابا یه تیکه نون کپک زده گذاشت چلوشو گفت بخور بخور که فردا باید بری یه خورده برف بیاری حوس برف کردم یه تیکه برف سفید سفید فهمیدی یا نه دخترک با ناراحتی گفت حالا حالا که برف نیست چله تابستون برف کجا پیدا میشه زن بابا با عصبانیت گفت بازم فضولی کردی روی حرف بزرگتر حرف زدی ها خودت میدونی اگه نیاری جا توی صحرا و بیابونه دخترک چیزی نگفت و یه گوشه خوابید فردا صبح باز هم زن بابا با داد و بیداد و سر و صدا اومد بالای سر دخترک که پاشو پاشو پاشو برو برف بیار من هوس برف کردم دخترک به ناچهار افتاد. رفت و رفت و رفت دید از سوز آفتاب و گرما بخار از سنگ بلند میشه عرق کرد و بیتاغت شد در این موقع باز اون چهار نفر رو دید که زیر درختی نیستن و خودشون رو باد میزنن دخترک جلو رفت و سلام کرد مرد گفتن، این دفعه دیگه دنبال چی اومدی؟ دخترک با گریه گفت برف زن بابام من یک گلونه یه سفیده برف کرد اگه نتونم براش تهیه کنم منو به خونه راه نمیده در این موقع تابستان رو کرد به زمستان و گفت برادرم چون این دختر خیلی خوب و مهربونه این دفعه تو باید بهش کمک کنی به اون یه مقدار برف بده زمستان همفوری چرخی زد هوا سرد شد برف اومد دخترک برف ها رو برداشت و با خوشحالی به طرف خونه راه افتاد وقتی دخترک به خونه رسید زن بابا از دیدن برف ها تعجب کرد و با خودش گفت این دختره چجوری تونسته برف بیاره اونم توی این تابستون گرم بعد طاقت نیاورد و از دخترک پرسید بگو ببینم تو چجوری این برف آوردی ها سحر و جادویی تو کاره ها بگو بگو زود باش دختره یه چشم رو دخترک نمیدونست چی بگه بابا که قصد داشت بره و سری به خواهرش بزنه گفت حیف حیف که کار دارم و همه چی رو از زیر اون زبون درازت بیرون میکشیدم بعد لگدی به اون زد و ادامه داد زود باش زود باش برو دوغ رو بجوشون و چشک درست کن من باید برم خونه‌ی خواهرم. تا بیام باید همه کارا رو کرده باشی وگرنه چونان بلایی سرت میارم که خودت سر به بیابون بذاری زن بابای بد جنس اینو گفت و از خونه بیرون رفت دخترک با گریه بلند شد آتیش اجاق رو روشن کرد و دیگه دوغ رو, رو روی اون گذاشته و رفت سراغ شونه‌ی زرد طلاییش پهلی دلش میخواست برای اون درد دل کنه. بنابراین این جلوی آینه ایستاد و شروع کرد به درد دل کردن برای شونه زرد تلایی. و چنان قرغ گفتن شد که همه چیز از یادش رفت. وقت به خودش اومد که دید ای داد و بیداد. دوخ سر رفته و تمامش روی زمین ریخت. دختره که بیچاره از ترس نمیدونه چیکار کنه و چه جوابی باید به زن باباش بده. با دست با کمی دور خودش چرخید به این طرف و اون طرف رفت با خودش گفت: خدایا. حالا حالا جواب زن بابام رو چی بدم؟ الان که سر برسه خدایا چیکار کنم؟ بعد گوشه ای نشست و زد زیر گریه. هنوزشونونه یه زرد طلایی توی دستش بود. همونطور که گریه میکرد با خودش گفت خدایا من از دست اینن بابا نجات نظور آواره کوه و صحرا بشم. در همین موقع چشمش به پرنده افتاد که جلوی پاهاش روی زمین نشسته بود کمی بعد پرنده پرواز کرد و از اونجا دور شد دخترک با گریه گفت کاش کاش منم مثل این پرنده بودم کاش میتونستم بپرم و از دست زن بابام فرار کنم هنوز حرف دخترک تموم شده بود که اتفاق عجیبی افتاد بله وقتی دخترک افسانه ما آرزو کرد به جای اون پرنده باشه در چشم هم زدن دخترک تبدیل به یه پرنده شد با با شونه زرد و طلایی بر سر در این موقع زن بابا از راه رسید دخترک پرید و روی شاخه درختی نشست بعد هم پرواز کرد و توی آسمون چرخید زن بابا رفت سراغ دیگه دو و تا چشمش به دیگ خالی افتاد با عصبانیت فریاد زد آهای دختری بی سروپا هواست کجا بود؟ مگه نگفتم مواظب باش ها؟ بعد هم با عجل رفت توی اتاق سراغ دخترک اما هرچی گشت دختر رو ندید که ندید یه دفعه صدایی به گوشش خورد پرندهی رو دید که روی درخت نشسته بود و مرتب میگفت دوق دوک دوق زن بابا با خودش گفت آه. چه پرنده ای تا بخور پرنده ای بی... این کشنگین طرفو ندیده بودم پرنده دوباره گفت دوق دوق دوق زن بابا با دقت به پرنده نگاه کرد پرنده خیلی شبیه دخترک بود زن بابا دوباره به پرنده نگاه کرد و همه چیز رو فهمید این پرنده همون دخترت بود. ترس زن بابا رو برداشت و رفت یک گوشهی پنون شد. پرنده هم پرید توی ده چرخی زد و خوند. دوق دوگ دوق بعد به زودی تمام مردم ده از موضوع با خبر شدن. زن بابا از ترس مردم مدت ها از خونه بیرون نیمد. از اون روز به بعد شونه به سر هر کجا میره و هر کسی رو میبینه میگه دوک دوک دوغ انگار میخواد به تمام مردم بگه که زن بابا چقدر اونو عذیت کرده و چطور شد که دوغ سر رفت و اون یه پرنده شد یه پرنده زیبا که شونه ای بر سر آنچه که شنیدید افثانه ایرانی شانه به سر بود برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایران به انتخاب و گردآوری جمیله فراهانی و کتاب افسانه‌های نامادری به گردآوری و بازنویسی محمد رضا شمس الین پلین نویسندگی بلغاری درباره افسانه میگه افسانه‌ها و قصه ها عجیب و غریب ولی زیبا آنها از غم انسان می کاهند و رنج و سختی را از یاد می برند. افسانها آدم را وادار می برای لحظاتی خود را فراموش کنند. دردها و بدبختی های خود را از یاد ببرند. مرهم دردهای بشری بشریاند و برای همین است که مردم آنها را به وجود آوردند. آوازها هم برای همین ساخته شدند. تو با آنها گوش می دهی به بعد خود را. فراموش میکنی. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالتپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار داویوش گودرزی تهیه کننده زهرا عبدالله ساده تا افثانه دیگر بدرود